نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها در پس ظاهر ساده و بی خودشون جهانی پیچیده و پر رمز و راز دارن در برنامه هزار افسان می شما همراهان رو به گستره شیرین و سرشار از رمز و راز افسانه ای دیگر ببریم. افسانه ای از مردمان سرزمین ایرلند به نام افسانه اسب سیاه برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایرلند نوشته ای فیلیپ اسمیت با ترجمه ای از حسنا شنبیاتی. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببرید. روزی روزگاری پادشاه پیری زندگی میکرد که سفه پسر داشت مدتی که گذشت پادشاه بیمار شد و کمی بعد هم از دنیا رفت بعد از مرگ پادشاه پیر سه پسر بر سر تصاحب اموال با هم درگیر شدن دو تا برادر بزرگتر همه چیز رو برای خودشون برداشتن و فقط یه اسب پیر سفید رنگ رو که یه پاش لنگ بود به برادر کچکتر دادن جوون که چاره دیگه‌ای نداشت سوار بر اسب لنگش شد و به طرف سرزمین‌های جدید به راه افتاد. جوون سوار بر اسب پیرش رفت و رفت و رفت تا اینکه احساس کرد اسب پیرش خسته و گرسنه شده و دیگه نمیتونه راه بره و نیاز به استراحت و علف تازه داره. بنابراین توقف کرد و از اسب پایین اومد. همون موقع سواری رو دید که از سمت غرب به طرفش میاد. سوار مثل شاهزاده ها سوار بر اسبی سیاه و زیبا بود و ظاهر ای داشت. جوون با دیدن سوار ناشناس گفت سلام دوست من سوار پاسخ داد سلام بر تو ای پسر پادشاه جوون پرسید چه خبر سوار ناشناس با بدخلقی گفت: هیچی. فقط از اینکه مجبورم سوار این اسب بدقلق بشم خیلی ناراحتم. <تصفيق> اون بیشتر شبیه یه الاغ تا یه اسب بعد نگاهی به اسب پیر جوان انداخت و گفت: ببینم. تو حاضری اسب سفید لنگت رو با اسب من عوض کنی؟ جوان طوسخندی زده گفت: <تصفيق> اگه این اسب سیاه به اون بدیه که تو گفتی مگه دیوونم که این معامله رو بکنم؟ مرد ناشناس گفت نه ترس به نظرم تو بهتر میتونی از این اسب استفاده کنی این اسب درسته که کمی بدگلقه ولی در عوض یه حسنی داره که اسبای دیگه ندارن جوون نگاهی به اسب سیاه انداخت و گفت چه حسنی؟ سوار ناشناس جواب داد آها، این اسب حسنش اینه که هر وقت که بخوای به هر نقطه از زمین بری فقط کافیه از اون بخوای تو رو به اونجا ببره هیچ مکانی روی زمین وجود نداره که این اسب اونجا رو نشناسه این اسب حتی میتونه تو رو به سرزمین زیر دریاها ببره جوان فکری کرد و پیشنهاد سوار ناشناس رو پذیرفت. اونا اسب‌هاشون رو با هم معامله کردن و هر کدوم به راهشون ادامه دادن. لاون سوار بر اسب سیاه به طرف سرزمین زیر دریاها برا افتاد اسب اونقدر سریع میتاخت که اونها قبل از طلوع خورشید به دروازه های اون سرزمین رسیدن و به طرف میدون اصلی تاختن از اون طرف توی میدون شهر جلسه مهمی در حال برگزاری بود و جمعیت زیادی در میدون به دور پسر پادشاه سرزمین زیر دریاها جام شده بود. خب حالا این جلسه برای چی بود؟ الان میگم بله پسر پادشاه سرزمین زیر دریاها دنبال کسی میگشت که بتونه به سرزمین یونان بره و دختر پادشاه یونان رو برای ازدواج با اون با خودش بیاره اما راستش رو بخواین هیچکس حاضر نبود تن به این کار سخت بده همون موقع جوان سوار بر اسب سیاه وارد میدون شهر شد پسر پادشاه سرزمین زیر دریاها به محض دیدن جوان گفت ای جوان سوار بر اسب سیاه من همین حالا تو رو ترسم کردم و تو اگرم بخوایی نمیتونی از فرمان من سرپیچی کنی پس به سرزمین یونان برو و شاهزاده خانم رو تا قبل از طلوع خورشید فردا با خودت به اینجا بیار جوان بیشاری افسانه ما هرچی گفت و اصرار کرد که توان انجام دادن این کار رو نداره پسر پادشاه سرزمین دریاها ها قبول نکرد که نکرد جوون که چاره ای جز اطاعت نداشت به اسب سیاه گفت ما با هم میریم و دختر پادشاهی اونان رو میاریم جوان افسانه ما سوار بر اسب سیاه به طرف یونان تاخت. در میون راه اسب گفت: جوان، خوب به حرفام گوش کن و هر چی میگم همون کار رو بکن. وقتی به یونان رسیدیم، باید به قصر پادشاه یونان نزدیک بشی. دختر پادشاه یونان که تا به حال اسبی به زیبایی من ندیده، با دیدن من از تو میخواد که اجازه بدی سوارم بشه. اما تو باید بون با بگی من اسبی نیمه وحشی و هیچکس کس تو نمیتونه سوارم بشه و اگه واقعا میخواد سوار بشه باید با تو سوار بشه نه به تنهایی. جوون خوب به حرفهای اسب سیاه گوش داد و اونا رفتن و رفتن تا به شهر رسیدن و از دروازه های مختلف گذشتن تا اینکه به نزدیکی قصر پادشاه رسیدن دختر پادشاه که در بلندترین نقطه قصر پشت پنجره نشسته بود، اسب سیاه رو دید و بلا فاصله به طرف اونا اومد و به جوان گفت به به، چه اسب زیبایی، اجازه میدی سوارش بشم؟ جوان گفت، شما میتونید با من سوار این اسب بشید چون این اسب نیمه وحشیه و ممکنه براتون خطر دختر حرف جوان رو قطع کرد و گفت، اما من خودم یه سوارکار دارم که همیشه با من سوار هست میشه و مواظب منه. جوان گفت، اگه حرفم رو باور ندارین به اون سوارکارتون فرمون بدین که سوار این اسب سیاه بشه، البته اگه بتونه. اما قبل از اینکه سوارکار بتونه خودش رو روی اسب سیاه بالا بکشه اسب با پاهای عقبیش ضربه سختی به اون زد و اونو روی زمین انداخت شاهزاده خانم که این وضع رو دید به جوان گفت آه پس خودت بیا و با من سوار اسب شو جوان افسانی ما که منتظر همین لحظه بود سوار اسب شد و شاهزاده خانم رو هم روی ااصل نشون و قبل از اینکه دختر بتونه نگاهی به پشت سرش بندازه در یک چشم هم زدن به سرزمین زیر دری ها رسیدن اون و شاهزاده خانم یونانی قبل طلوع خورشید به سرزمین زیر دریاها رسیدند پسر پادشاه سرزمین زیر دریاها با دیدن اونها با خوشحالی فریاد زد آه بالاخره اومدی خوش آمدین خوش آمدین. و بعد به شاهزاده خانم ادا احترام کرد و گفت من فرزند موفقیت و پیروزی هستم باید هر چه زودتر مراسم ازدواجمون رو برپا کنیم دختر پادشاه اونان با شنیدن این حرف گفت بهتره عجله نکنین چون تا زمانی که فنجان نغرهی که مادر و مادرم در روز عروسیشون به همراه داشتن برام نیاری با شما ازدواج نمیکنم. پسر پادشاه رو کرد به جوان و گفت ای سوار اسب بسیار به تو فرمان میدم که به یونان بری و فنجان نقرهای رو قبل از طلوع خورشید فردا برام بیاری. جوان که چاره جز اطاعت نداشت به طرف اسب سیاه رفت و با ناراحتی گفت: حالا چیکار کنم؟ اسب سیاه گفت: قصه نخور. سوار شد تا به دنبال فنجان نقره ای بریم. الان مردم یونان همگی توی قصر پادشاه جمع شدن و دارن پادشاه رو که از دوزیده شدن دخترش ناراحته دلداری میدن و فنجان ای رو میون خودشون دست به دست میکرخونن تو باید میون اونا بری و مثل اونا رفتار کنی و وقتی نوبت به تو رسید فنجان رو بگیری و اونو زیر لباست پنهان کنی و زود بیای جایی که من منتظرتم جوان سوار بر اسب سیاه به طرف سرزمین یونان براه افتاد رفت و رفت تا به یونان رسید جوون همون کاریو کرد که اسب سیاه گفته بود به قصر پادشاه رفت و فنجانو برداشت از قصر بیرون اومد و فوراً خودشو به اسب سیاه رسوند سوار اون شد و به طرف سرزمین زیر دریاها حرکت کرد اونا اونقدر سری تاختند که قبل از طلوع خورشید به مقصد رسید وقتی جوان سوار بر اسب سیاه به قصر رسید، پسر پادشاه با خوشحالی به استقبالش رفت و فنجان نغرهی رو از دستش گرفت و به سراغ شاهزاده خانم رفت و گفت دیگه لازم نیست سبر کنیم، باید هرچه زودتر مراسم عروسی رو برگزار کنیم. اما شاهزاد خانم گفت بهتر عجله نکنین، من من بدون حلقه ازدواج مادرم که مادر بزرگم در روز عروسیش بهش داده بود و خودش هم اونو از مادر بزرگش در روز عروسیش گرفته بود ازدواج نمیکنم و این بار هم پسر پادشاه جوان افسانه ما رو مجبور کرد که به سرزمین یونان بره و اون حلقه رو تا قبل از سپیددم فردا براش بیاره جوان به سراغ اسب سیاه رفت و خواسته یه پسر پادشاه رو برای اون بازگو کرد اسب گفت، آوردن انگوشتر دشوارترین کاریه که تا به حال از من خواسته شده، ولی خب، چاره جز اطاعت نداریم، پس زود باش سوار شو تا بریم و انگشتر رو بیاریم. جوون گفت، بعد چی کار کنیم؟ کارمون دشواره؟ اسب سیاه گفت، آره ما باید از سه کوه بگذریم، کوه اول کوه برفیه، کوه دوم کوه یخیه و کوه سوم کوه آتیشه گذشتن از این سه کوه کار سخت و دشواریه ولی خب چاره نداریم باید هر زودتر رو جوان سوار بر اسب سیاه راه افتاد و بعد از مدتی تاختن به کوه برفی رسیدن و از اون بالا رفتند اما هنوز مسافت زیادی نرفته بودن که میون گردنهاگ کوه برفی در میون برف و سرماگیر کردند. ولی با هر سختی که بود خودشون رو به نزدیکی قله کوه رسندن اونا رفتن و رفتن تا به کوه یخی رسیدن اونجا هم با هر زحمتی بود خودشون رو به قله کوه یخی رسوندند و نوبت به کوه آتشی بود قبول از این کوه کار سختی بود اما اونا با تلاش و سختی زیاد بالاخره موفق شدن به قله کوه آتشی برسند و در نهایت به دروازه های شهر یونان رسیدند. در این موقع اسب سیاه گفت برو و از آهنگر شهر بخوا به تعداد مفصلهای بدن من میخ آهنی بسازه. جوان هم فوراً به سراغ آهنگر شهر رفت و با مقداری میخ آهنی نزد اسب سیاه برگشت اسب گفت حالا هر کدوم از میخها رو توی یکی از های من فرو کن جوان کاری رو که اسب خواسته بود انجام داد اسب ادامه داد اینجا یه دریاچه وجود داره که طول و ارزش زیاده من باید توی این دریاچه برم با رفتن من توی دریاچه اون آتیش میگیره و شکن میشه هگه آتیش تا قبل از تو خورشید خاموش شد منتظرم بمون در غیر این صورت از اینجا برو اسب، بعد از گفتن این حرف رفت توی دریاچه و یه دفعه دریاچه شکن شد جوون هم که کاری نداشت بکنه کنار دریاچه دراز کشید و منتظر ماند. هوا کم کم روشن شد اما از اسب خبری نشد. جوان دیگه نومی شده بود که یه دفعه همزمان با ظاهر شدن خورشید در افق دریاچه خاموش شد و اسب سیاه در حالی که فقط یه میخ آهنی در بدنش بود و حلقه شاهزاده خانم در نوک اون میدرخشید از آب بیرون اومد. اسب تکونی به خودش داد و به جوان گفت: "سوار شو." سوار شو فرصت زیادی نداریم. و جوان با سرعت سوار اسب سیاه شد و به راه افتاد. رفتن و رفتن تا به کوه آتیش رسیدن اسب با جهشی خودش رو به نوک قله رسوند. بعد از روی کوه آتیش به کوه یخی و از کوه یخی به قله برفی برید و تا قبل از طلوع خورشید به سرزمین زیر دریاها رسید. پسر پادشاه از دیدن جوان و اسب سیاه خیلی خوشحال شد و به شاهزاده خانم گفت که باید هر چه زودتر مراسم عروسی رو برگزار کنن اما شاهزاده خانم این بار گفت که شیخ قصر زیبا و باشکو باید بسازن و پسر پادشاه از جوان خواست که فوراً یک قصر زیبا و باشکو برای شاهزاده خانم آماده کنه و اسب سیاه این بار هم به کمک جوان اومد و در عرض چند ساعت یک قصر زیبا و باشکوه برای شاهزاده خانم آماده کرد. اما شاهزاده خانم گفت که این قصر یک چاه آب کم داره تا در جشنها و مهمانیها مجبور نباشند برای آوردن آب به جاهای دور برند. این بار هم از جوان خواسته شد که فوراً یه چاه آب برای عصر آماده کنه و اسب سیاه در یه چشم به هم زدن یه چاه آماده کرد. شاهزاده خانم چاه رو دید و گفت م... چاه خوبیه فقط یه اشکال داره. پسر پادشاه گفت چه اشکالی؟ شاهزاده خانم گفت اینجا اینجا ببین. پسر پادشاه بر لبه چاه خم شد تا جایی رو که شاهزاده خانم نشون میداد ببینه. شاهزاده خانوم که منتظر همین لحظه بود اون رو هول داد و توی چاه انداخت و گفت من هیچ وقت با تو ازدواج نمی کنم اگه قرار باشه ازدواج کنم با مرد شجاعی که این همه کارهای سخت رو به خاطر من انجام داده ازدواج میکنم البته اگه اون هم بخواد با من ازدواج کنه و اینطوری شد که شاهزاده خانوم و جوون شجا با هم ازدواج کردند و اسب سیاه رو هم رها کردند اما بشنوید از اسب سیاه که این همه به جوون کمک کرده بود جوون بعد از اینکه با شاهزاده خانم ازدواج کرد به کلی اسب سیاه رو فراموش کرد و تا چند سال بیاد او نیفتاد تا اینکه یه روز یاد اسب سیاه افتاد و از اینکه در این سالها اونو رو فراموش کرده بود سخت شرمنده شد بنابراین تصمیم گرفت دوباره اونو پیدا کنه و بالاخره اون قد گشت و گشت و گشت و جستجو کرد تا اسب سیاه رو پیدا کرد جوون با دیدن اسب با شرمندگی گفت دوست عزیز منو ببخش منو ببخش, منو ببخش من اونقدر مشغول زندگی خودم شدم که بهترین دوستم یعنی تو رو فراموش کردم شرمندم اسب گفت مهم نیست من فقط از تو یه خواهش دارم جوون پرسید چه خواهشی اسب گفت خواهش میکنم همین الان سرم رو با شمشیر تیزت از تن جدا کنی جوون گفت این چه حرفیه تو بهترین دوست منی من هیچ وقت چون چنین کاری رو نمی کنم. و اسب گفت اگه منو نکشی من تو رو میکشم جوون که نمیخواست بمیره بناچار، به ناچار شمشیرش رو برداشت و سر اسب رو از تنش جدا کرد و بعد نشست و های های گریه کرد در این موقع صدایی به گوشش رسید سلام بر شوهرخواهر عزیزم سلام جوون برگشت و نگاهی به عقب انداخت اونجا مردی با چشمهای مهربون ایستاده بود مرد گفت چرا داری برای این اسب سیاه گریه می کنی؟ جوان با گریه جواب داد <تصفيق> اون تنها موجودی بود که من واقعا از زمیم و دوستش داشتم مرد گفت آیا حاضری منو به جای اون دوست خودت بدونی؟ جوان گفت اگه بتونم به تو مثل عصف کنم بله اما اگه نتونم عصف رو ترجیح میدم. مرد گفت من همون اسف سیاهم و اگه نبودم تو چطور میتونستی به تمام چیزهایی که توی خونه پدرم بود برسی ها منو ترس کرده بودن و برای باطل شدن ترس میبایست برای مدت مشخصی به یه انسان خدمت میکردم من قبل از اینکه تو رو ببینم با آدمهای زیادی برخورد کرده بودم اما اونا هیچ کدوم حاضر نبودن منو حتی برای چند روز نگهدارن اونا همیشه میگفتن نمیتونن منو کنترل کنن ولی ولی تو تنها کسی بودی که منو نگه داشتی و باعث شدی ترس من باطل بشه حالا حالم بیا با هم به خونه بریم و توی خونه پدرم جشن مگیری افسانه ایرلندی اسب سیاه را شنیدید این افسانه برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایرلند نوشته ای فیلیپ اسمیت بود با ترجمه ای از حسنا شنبیاتی امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا زیبای ایرلندی لذت برده باشید هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجراب مهران دوستی صداوردار ستاره همیدی تایید کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود